طرقه چه و دوم از نیمه اول بازی چقدر راه حتی دست دستداد؟ من هم همراه با اون ازستتون میخوررم که چرا این توپبار دروازه نشد یه روز یه تیم فوتبال بود که اسمش تیم امید بود. اما ما از اونجای باش همراه میشیم که تو مسیر ناامیدی قدم گذاشت. این تیم امید توسط دو تا حاجه داره میشد. یکیشون حاج هوی به کاشانی بود؟ تو هفتو بازی بنو مالیکسا تو مساوی هم داشته میکنم که برد اصلا نداشته اصلا بازی اصلا برد نداشته ایشون یکیشون هم حاج محمد مایلی که حد چه فوتبالیه که شما از قبل از بازی شروع میکنن به دری وری گفتن و اهانت کردن واقعا این فوتبال البته یه محمد خاکبور هم بود که حاجی نبود ولی ظاهرا حاجی ها رو خیلی دوست داشت اگر نیت همه ما برافرازی پرچم کشورمون و خوشحالی مردم باشه برای اون کار هر ریسکی ماجره های عجیب و باور نکردنی تیم امید رو در فیلم جذاب و دیدنی حاجی ها و تیم امیدشان ببینید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 بهترین فیلم روزهای فوتبال ایران را در همه ی ورزشگاه های کشور ببینید به تعیق کنندگی وزارت ورزش و جوانان حاجی ها و تیم امیدشان